پس من مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم سؤال اصاسی اینه که مورد روش استنباد آیا تحصیل و تأمل در دانش اصول کفایت میکنه برای بدست آوردن روش و تسلط بر روش استنباد یا نه ما میبینیم که گزاره هایی که به عنوان قاعده اصولی مطرح میشه در یه نگاه بدوی انتظار داریم میشه به عنوان مبنا به ما کمک بکنه در فقیق از اون مبانی استفاده کنیم خب این تعریف رو که نگاه میکنیم این واقعیت رو که نگاه میبینیم خود این تک تک این خروجی ها روش نیست خب ممکنه کسی یه پاسخ خوبی بده بگه آقا برخ. اگر نه همه مبانی دستی کم برقی از مبانی که عنوان قواعد اصولی ما طی سطوح مختلف و مقاطع مختلف تحصیل در علم اصول به دست میاریم این مبانی میتوانه روش ساز باشه روش آفرین باشه مبانی روش ساز تلقی بشن میگویم خب باشه ما هم اصلا قبول میکنیم اگر این رو به پس پس باز معلوم میشه که پیشفرض ما چیز دیگه ایه پیشفرز اینه که روش چیز متفاوتیه این مبنا، این مبانی می توانند موثر باشند برای تولید روش اگر گفتیم الف حجیت دارد این یه سر روش ها رو اختضا میکنه اگر حداقل سازندم نباشه به اونا میدان میده اگر گفتیم این الف حجیت ندارد خب اون روش های متناسب با اون رو حداقل حذف میکنه پس یا مبناسازه سازه ممکنه شما در مفهوم مبناسازی ساختن مب ببخشید روش سازی شما مشکل داشته باشید بگید آقا مبنا روش ساز باشی یا این چی من قبول نمی کنم میگه نداره یه کسی ممکنه قبول کنه خب بعد لوازمش رو بردار برای خودش مستدل کنه تصویر خوبی داشته باشه صورت بندی از این مقاله داشته باشه مبانی روش سازم یعنی چی خب اگر نه کوتاه بیا بگه آقا یه سری مبانی با یه سری از روش ها تناسب دارند خوب باشه اینم حرف خوبیه این کوتاه آمد ولی چیه به هر حال مهوریت روش استقلال روش و تمایز روش از مبانی رو باز پیش خودش گرفته پس یک مب... یک روی کرد ممکن این باشه بگه آقا مب... اصول خروجیش کلن روشه اسم این مبانی رو بذاره آقا روش اصلا تمایز بین مفهوم مبانی با روش قایل نباشه نتیجه خواهد شد شما اگر اصولی بشید باید واقعا استاد استنبات حکم بشید یک کسی میگه نه آقا من تصویرم این نیست صورت بندی از بحثی نیست که خروجی اصول حتما روشه خروجی اصول مبانی اما با روشی نسبتی داره یا بگیم مبانی نسبت روش سازند مبنای علف رو اگه قبول کردیم یه سری روش ها رو قبول ایجاب میکنه می سازه اگه قبول نکردیم یه سری روشای دیگه خب باز این ادعای زیاده سازندگی روش که باید مفهمومش رو روشن کنم یعنی چی ما اگه مبنا سیستم بورس کلام اصلا این می سازه یعنی چی بعضی بزرگوار ممکنه این تعبیر رو به کار من اینو نمیگم کتاه تر آقا برخی از مبانی با برخی روش ها تناسب داره مبنای علف رو قبول بکنیم یه سری روش ها به دنبال داشته باشه یه قبول نکنیم یه روش خب یه قدم بیان جلوتر اصلا واقعا میشه بگیم که حتما باز اینجا این که روش در دل اصول تولید بیشه باز بهش میدان داره میده من عرضم متفاوته عرضم اینه که آقا ولو اینکه این گزاره رو من می توانم بپذیرم که برخی مبانی با برخی روش‌ها سازگارن با برخی روش‌ها ناسازگارن اما میگم روش اصلا یه چیز جدایی بر عهده دانش و اصول نیست ولو اینکه تردن دل یه سری روشم از دلش در بیام بالاتر یه سری روش‌ها هم با برخ با برقی مبانی سازگاری داشته باشه با برخی سازگاری پس روش چیه دوست مفهوم، دوست زاویه، بس رو ما اگر برجسته کنیم میفهمیم روش چیه. شما وقتی میخواید استنبات بکنید در یک مهورهای کلی میتوانید نگاه بکنید. برای هر از اون مهورهای کلی که لیست خواهم کرد قدمت شما در مورد اونها میتوانید یک مراحل، مراحل کلی و در دل هر مرحله یک گامهایی پیدا کنید. یه جایی هم ممکنه دو سه تا مسیر پیدا کنن که اون مسیرها رو اسمش رو ممکنه میذاریم الگوریتم حالا بعد توضیح ده خب این پس یه مفهوم دقلی با اسم مراحل گام ها گام هم مرحل از دیگه من تا مراحل جزی تر چشم این تذکر خیلی خوبی بود درخشی خدمتشو عرض کنم ببینید پس البته من وقتی پروژکتور واسه جای عادت کردم هر چی میگم همونجا مینیسم هم, می هم ترطمیز سخت با خط قشنگتر بنویسم خطی کامپیوتری بعد مانده هم میشه بعدن دوباره ارتقاشم میدم ولی اینکه باز بحثا من مینویسم از قبلم دارم باز هر وقت یه درسی درسی من دوباره مینویسم همونجا مینیسم هم دوستان ببینن دیگه با سرعتام میگم تیترا هم هدینگ بندی میکنیم تیتد میزنم ریز میشه درشت میشه اه. پس یکی این که ماهیت روش و روش شناسی دی احتمالات مختلف احتمال اول بگیم چیه اه. همون دانش اساس است. احتمال احتمال دوم از این لازمش این نافی استقلال و تمایز روش و روش شناسی از اصول است. این ناف احتمال دوم بگیم دانش اصول، تولید،, تولید کننده روش است روش ساز است. به تعبیر دیگه اگر مبانی مبانی تولیدی اصول یعنی مبانی تولید اصول این چیه؟ روش ساز است. احتمال سرم ببین چه مبانی تولید شده در اصول و دانش اصول با روش های خاص تناسب دارند. این متظنبه چه؟ پس اینجا هم الان این نافی استقلال تمایزه این هم تقریبا میتوانه چی باشه؟ این این دو تا پذیرفران که تمایز دارند منافاتن تمایز و اصول روش بش. حالا من مثلا در اولین اولیه صفات تساوی دارم دومین دارم اون خصوص اون هم بوده. پس بحث تقریبا. ولی ببین پس این به تعبیر شما میشه تساوی. حالا البته اون کانال به این دقت کسی نمیگه اون که احتمال اعتماد. خب احتمال چهارم بگیم چیه؟ با همایوز هم چی؟ خلنده تبایی ما داره همایوز در واقع مبانی و به طبق اصول و دانش اصول با روش شناسی با روش استنباد حالا یه فرق ذریعی با روش شناسی هم میشه بگیم روش شناسی یه سطح بالاته از روش باشه یه موقع میگیم روش شیخ خنصاری چیه؟ روش مرحوم آقای خویی چیه؟ روش امام چیه؟ یه موقع جدا جدا اصلا نقد و ابرام نمی‌کنیم. یه موقع میگیم روش شناسی سطح بالاتری میخوای اینا رو ببینید کدامش درسته. یه داوری هم بکنه. حالا فعلاً خود با هم میگیم تمایز و روش استنباط داره. حالا روش شناسی خیلی کار نمی‌کنه. ما خودم به این قائلم، این معنیش نیست توانی مبانی و دانش اصول هدف دانش اصولی نیست ولو هر چند چی باشن هر چند روش هایی در اصول معرفی شوند یا تولید شوند خب نتیجه این چیه این تمایزه نیاز به یه درس، ما یه درس داریم یه دانش داریم شما دانش شی اصول رو پنج مدل چهار مدل سه مدل ممکن است ارائه بدید. دانش توانستی اصولی که ما الان میبینیم چیه؟ از بعد به آشنایی شما میگه تو مبادی تصوری و تصدیقی به نفع اجمالی به شما آموزش دادن بدون استدلال. مثل کتاب مفاهیم تقسیما رو مثلا کتاب آشنایی با علوم اسلامی شهید مطری آموزش داده دنبال استدلال نیست اونجا اینم اصوله ولی دنبال استدلال نیست و آن نقد نیست میاد بالاتر اصول ساید معالم میخوانید مرحوم مزفر میخوانید اون کتاب مثلا مرحوم آقای حیدره میخانید. آقای فیه میخوانید یه جایی بودم کتاب درسی بودش حلقات شاید صد رو میخوانید مثلا حلقه اولن. یا دیگه کتاب باید تولای که المجز اتول صبحانی میخواید. این استطلاال میاری خیلی جمله نه هم میکنید ولی با اون پرووار نیست خب این الان این همشه یه درس اون درس مینم یه مورد یه درس یه که خیلی هم بهش نیاز دارید. این مدل بالاترش هم مدل قبلی میشه تو درس خارج، توضیح و طبیین و استدلال و نقد و ابرام و این قبول کنه و اون قبول کنیم این دست کاملشه یه درس دیگه هم که من فکرم خلال داریم موانیه به شما بگم فرض کنیم پنجاه تا مسئله اصولی داریم تو هر مبنا دو تا سه تا پنج تا ده تا مبنا هست یکی قایل به این تفصیله که قایل به اونه به شما شما مبانی تصوری و تقسیمات و اجمالا یاد گرفتید دیگه تو دوره صد مبانی جدیدم به شما آموزش بده کتاب شهید حلقات این با استدلال میگه مرادم این نیست فقط بگه آقا تو این مسئله پنج تا مبنا هست بعد بیا تطویق بکنه البته تو این درسای مدل قبلی هم میشه تطویقات رو بود ولی من فکرم این نیازه الان هست شما رو کلی استدلال یاد نیاد این دوره اون غلط گیجم میشه بعد آخرش چی؟ تطویق ولد نیست اگر این مبنا رو قبول بکنید خروجیش چه فایده‌ای باید باشه مبنای دوم رو قبول کنید چه فایده‌ای این اضافه دنبال دو چند تا کتاب یا اگه درس‌های فقط بیا تطریقات بشه و درس بده من دو کتاب تو ذهنم هست این همین حلقات 600 تو المصطفای بزرگوار که کتابای روش استنباطی هم داره آقای شیخ محمود ایدانی چاپی داره درس درسش کرده تطبیقات داره این یه مدل یکی دکته دیگه هم هست یا آقای چی هست الان در نجفه دوست جل کتاب به اسم قواعد اصول داره عفوای اف... نه آقای ایروانی هم شاید تطبیقات تو درسش داره غیر از آقای ایروانی یه بزرگوار دیگه از قواعد اصول داره اه... اسمش فراموش کردم اونم تطبیقات داره آقای یه کتابی هم که پارسال میخواندید با جای خادم مذاکرین مولا آقای کیه آقای مو به همه حمدانی نیست. اندلیبی کیه؟ مو... اندلیب به در خود آقای مؤمن اشراف داشته و پسرش رو با آقای اندلیبم. اصلا تو اندلیب فامنینی و پسر آقای مؤمن نوشتن. اونم درس تطبیق به اونم تطبیقات داره. درسته؟ حالا اون خیلی کم. کم. اون یکی کتابی که عرض کردم با این کتاب مشابهتی داره. 7 8 تا تا خالص دلیلا نوشته شده برای طلاب پایکوین. آکی آقای آقای علیدی بود ولی دقیقاً بحثش نبود. خودش اساس اساس تقریبا به جا از قرار تدریس پیش خب ولی اونا ساده است طبیعتام. 100 پوینت. آقای محمد صادق محمدی که رئیس انجمن اصول هست. بره. یا کتابش چاپ شده یا تبلیغش دیدم. در اعمات رو هم تطبیقات اصول داشت و دو, دو سوت کتاب سنی هم فی جمله بعضی چی؟ آیا صادر است. کار مثلا کل بحث مشترک رو رفته بعد مثلا شجره یه مثال زد. همین. ولی اون کار که شما می اون رو تقویی هیچ کدوم انجام نداده چون که مثلا ما میگیم پنشتا مبنا داریم خروجی هر برناسی بعد حالا همون رو هم میشه به صورت رشته ای یعنی یه کسی بیا با نگاه مثالهای فقه العباده بیاره یه کسی بیا مثالهای فقه سیاسه بیاره تطبیقات اصول در فقه سیاسه تطبیقات در فقه فناوری تطبیقات در فلان خب این ها داخل پرانتز. این خودش یه بحث مستقل بود ولی اینجا من خواستم استفاده کنم یک از رو شما به چند روش میتوانید ارائه بدید خب از این حالا یه مساق مربوط به بحث خودمون می‌خوام استفاده کنم ببینید من قبل از اینکه نیاز به رو بگم این الان تمایز مبانی داره طرق اصول با روش پس روش یه چیزه خب روش الان کجا شما سوراخ می‌گیرید ببینید لابلای های فقی و درس خارج‌ها روش داره اجرا میشه اگه خاطر شرف شما باشه در مصاحبه ورودیه این دوره من مثال های از دوستان میپرسیدم. پنش شش تا محور کلی ما داریم که اونها رو در دو سه تا تیتر ما زرد ببینید الان در لابلای درس های خارج و کتاب تقریرات فقه شما رو روش پیدا میکنید. منطقه پراکنده است. اگر شما مکاسب محرمه میخانید مکاسب محرمه هم چیه؟ اثبات وجوبه؟ نه اثبات استحبابه؟ نه هم اثبات جواز و عدم جوازه هم مقام تکلیفی جواز تکلیفی عدم جواز تکلیفی حرمته یه جاهایی با جواز و عدم جوازه چی کار داره؟ وضعی کار داره که مثلا بطلان و صحت میشه خب شما اگه می‌خواید ببینید روش استنباط وجوب رو یاد بگیرید کجا باید یاد بگیرید؟ نه اصلا این می‌خواد روش استنباط شرط رو استنباط... یاد بگیرید کجا باید یاد بگیرید؟ اگر مثلا در سلات باب شرایط سلات رو ببینید اونجا مثالاش هست پس ما میتوانیم ببینید الان درس فقه موجود همش روشه مونتا روش ها رو داره هی تطبیق میکنه ولی چون که درس مسئله مهوره روش استنباد به تناسب و مسئله داره استفاده میشه به شما آموزش منذبط روش ارائه نمیده اگر هم شما خوب یاد بگیرید اگر استاد حواسش باشه خودش هم ارتقا داشته باشه آدم روشمندی باشه فوقش بعضی مسائل روشش رو به شما یاد میده اصلا 10 سال برید درس اینا یا اون یکی آقا همه روش های مورد نیاز رو به شما آموزش نخواهد داد حالا بعد آرام رو من میگم روش چیه یه وارد شدید پس نیاز تر تراحی و اجرای دروسه اختصاصی روش استنباد خب این ماده اصلش کجاست استخراج رو... در واقعی با استخراج روش های حراکنده غیر منظم بلکه یه جایی همکنه هایی دیگه که یه جایی موقعی تناقض آمیز باشه از چی؟ از دروس دروس و تحقیقات خارج تحقیقات خارج فرم الان اگه نیاز به عکس بگیرید یا میخوایی کنیسی تو عکس از نمی‌دونی این قاره رو می‌دون تو کانال امزای دوستانه میگم حسر عقل بوده مثلا که فایده این 4 تا نداریم یاد واقع در خارج چار نفر مثلا قائل داره هر کدوم قائل داره نه من میگم حس لا به لای صحبتو چون احساسی من کردم مم. که بعضیا الانو تفقیق میکنیم میگیم احتمال کوتابیه باشه خب از این نیاز به طرای اجرا خب حالا اون فرضیه که نسبه من وارد شدم چرا خونده که خست هم نشید؟ شبیه چیز ها دید رویش از کن با مبانی نیست که فروره از یا چیز دارن به مقره یه کرده باشه همین امکانش هست دقیقی از اون مرداش که چیز دیگه یه درقه من توضیح که روش مرادم معلوم بشه می‌فهم بگیم آقا ظهور خود جمع اول لغوی حجت هست یا حجت نیست؟ دیگه چی؟ پنجاتا مرگون همطور میشن آقا تمسک به آم در شبهه مستاقیه حجت نیست مفهوم فلان حجت است، مفهوم فلان حجت نیست اون یه گذره گذاره گذاره روش این هم اضافه کنیم روش حالت بایدیه روش جنبه بایدی دارد آقا این کار بکن برای استنبادو اون نمیگه چه کار بکن میگه این فالانچون خود جت هست خب من چه کار کنم قرینه بیارم نرم میگیم قرینه برو پیدا بکن بایدیه البته خود غمش شناسی هم دو جور بحث میکنیم اونه نمیرم باید بشه ها پس اونجا اون مبانی توصیفی هست مبنای درست رو توصیف میکنن. مبانی توصیف گیدگاه دیدگاه فرد در یک امر است خب این بایده البته یه موقع شما میید روش شیخ هنساید رو توصیف میکنید یه موقع خود شما یه کتاب میسین میگه آقا روش خوب این از این کار رو بکن اون بکنه اون بایدی با این یه مقداری حباید و هنجار اونجا یه مشابهتی با این داره خب حالا من, من تو روش اناسر روشی این ماهیت رو بود توسه این تکمیل ماهیت بود یکی میگم مرا ارکان و اناسور روششناسی یکی رو اشاره کردم چی بود؟ لحاظ یکی اینکه که مبارد رو من از هم تفکیل کنیم تمایز موارد مورد نیاز در استنباد و اشتحاد این چند هاست شما یکی میگید با چی سر و کار دارید قدم اول موضوع شناسی آهای موضوع چیه؟ ماهیت شناسی در ما، ما موضوع شناسی، ماهیت شناسی و تعاریف ماهیت و تعاریف، حالاستی موضوعه موضوعه دو، مسئله شناسی مسئله با موضوع چه فرق میکنه؟ اون موضوع میره توی یه قضیه یه حکمی قراره به عنوان سؤال مطرح میکنی موضوع رمز ارز بعد مسئله چیه؟ حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چیه؟ این میشه مسئله خود این ما خود ساده میگیریم ولی این واقعا پیچیده از مسئله شماسی برای هر موضوع چند تا مسئله میشه درست کرد بحث بردید چیه؟ بحث حکم این به یک نوع مراحل کلی سیستم هست ها واقع موارد مورد نیاز مراحل استنباط مراحل کلی در واقع اینطور این طور. مراحل کلی استنباط یکی میگن او غلط نشه خب شناسی که این وصف مورد نیازه در واقع کیفیت هست دولت نه ادامه بحث بیشتر اون که شناسی <تصفيق> که هم به موضوع شناسی را کمک کنه هم به بحث چی؟ خود روایت این روایت رو ما بررسی بکنیم در پنشت کتاب اصلی قدیمی آمده متنش با هم چه تفاوتی داره؟ آیا عین همه؟ یا این یه قید اضافه داره؟ یه قید اضافه نداره؟ کم زیاد بعد مماحث صدوری خودش، پس رایش چیه؟ سند شناسی حالا معمولاً همه همی میگرم رجال ولی سنده باید تفکیه از رجال سند شناسی رجال یکی بباعث فهرستی نوره منبع, منبع شناسی شرد، فقی حالی منبع اقیه یک معنیتی هم داره درسته مراد همینه ها منبع هایی به معنی اقل و اجماع و فالا این میگن منبع منبع یعنی کتاب کتاب و رساله افاده. این رو چه کسی بیشتر داره مطرح میکنه الان تو حوزه ای کنونه اید؟ آج آقای مددی؟ آقای چیز هست؟ بس نیستن؟ آقای شیرازی؟ نه، پسر آقا اینو خیلی میکنه. پسر آقا اینو خیلی کتاب چیز کرد؟ آقای ملکیان؟ ملکی یا ملکیان؟ ملکیان خارجشی؟ نه، ملکیان. برادرش. دو تا برادرهای ملکی که سید ش این بده خدا بوسان کتاب همه کتاب مفصلی که رجال نجاشی هم چیز کرده آه. خب ولی به هم نسیه کرده کلا توزه آه. باید, باید, باید نسبتش با آقای مددی هم چیه من خودم درس آقای مددیش وقت مثلا 20 سال 25 سال پیش مینفتم بحث ولیت فقی بعد خب مکاسبش رو اصول داشتم خیلیش نوارا شکرش کردن اون, اون موقع یه جمع محدودی بودن مثلا درس عربی همیش هم میکفت خب الان دیگه خیلی وسیع خب ولی قایتا هم داره ایشان شاگرد آقای امام یه مدت محدودی بوده شاگرد آقای خویی هم بوده بعد شاگرد آقای سیستانی هم بوده بلکه احیا کننده یه مقیقه سیستانیه آقای سیستانی شاگرد خیلی محدود داشته کسی چیزی ایشان کلی برای شاگرد میاره چون که آقای سیستانی هم تو فضای آقای سیزه آقای طلا بورجردیه من چیزی نشنیدم ازش که یا این بحثت یا از آقای سیستانی گرفتی یا نه ولی ممکنه هر وقتی تو ایشان روی کرده تاریخی داره یا خودش به ابتکار خودش به این برجست رسیده اصلا تو من هم میخوام بگم من... یعنی من خودم الان اصلا یادم نیست تو درسایشان چیز شنده باشم که از آقای سیستانی ولی آقای سیستانی هم گرشه تاریخی داره آیتوله برو جردی هم که گرش تاریخی داره حالا فیل جمله میشه بگه این هست. پس اسم آم من برای ما گذاشتم. هم اکس میان سوال رجال با سند یکی می حسابش میکنن ولی اول ما باید سند شناسی کنیم بعد رجال بعد میرسیم بحثای حکم شناسی خب حکم شناسی این خودش مراهل تیزتنی داره میشه اوندارو بگیم در واقع حکم شناسی بگیم. تأکید کنیم یا با هم بریم خب شناسی در واقع استدلالی یکی دیگه بحث بحث و تراجیح و جنب رمادی که مخاطرش بحث اصول عملیه بعدا خروجی خب ببینید اینا الان شد اسم اینا شد تیم مراحل کلی در واقع این مراهل کلی آره این دوتا تمایز در دراغه نیاز به تمایز موارد تو که ما خروجیم رو میشه مراهل کلی استنفاق آقای پیجرگی فسایی خب. در کاروی جنبه این تا دنگاه مهندیسی نسبتش رو میگم آقای حالا این که بگم میگم چه نسبتی به اون یکی دیگه چیه تراحی نه بباشه این مراهل کلی من شما کنم و گام های هر کدام گام های جوزی خود من اینوی میگم برای هر کدام گام ها میارم اول موضوع شناسی سچار دسته میکنم برای هر کدامش موضوع شناسی استنباطی موضوع شناسی تطبیقی موضوع شناسی مواصره جوری برای هر کدام گام هایی میارم این رو مرتوب داری؟ آره ولی خب اما هر کنون چون جوزیت خیلی داره حوصله برم هست از فایل فایله صوتیش هم بذاشتم مثلا ها از فایلش البته ضبط خراب بود و نیاز هست دوباره این یکی فشورده تر موضوع شناسی مفسر پس ببین خب یکی میخوام اسمش گذاشتم چی؟ مراحل کلی و گوانهای جزئی این یکی یکی ذوابت یا بگیم فنون و زوابت تو هر کدوم از این گام ها و محصول های زوابتو فونیو باید رعایت کنیم البته اینا نیاز به طراحی بیشتری داره و یکی هم اصالی اصالی به روشی تو هر اینا ممکنه اصول های روشی خاصی به کار بریم یه جایی ممکنه مشترک باشه یه جایی اینا رو باید بیشتر یعنی ما با بعضی دوستان چند ساله کار میکردیم و واسه این سگانه رو در واقعه حالا اینجور بگیم نیاز خود توضیح این داره استقار جرمون بیشتیم پس ببینید الان این که میگم تو درس های داخل, <تصفيق> داخل کتاب های فقهی داخل تقریرات داخل درس های خارج شما چی میبینید؟ ببین این درسیش رو به کار میبرن ولی نمیگن بعضی جاها هم مثلا حواس خود هم نیست. مثلا رایت نمی کنن ببینید این نوعان هم حواس خود رایت سه دستمان کردم، دست هر کدام تا هم موضوع دیده نشد حالا اصل مراحل کلی گام ها میخوام برگردم به این قسم میخوام هر کنم ببینید این یه پسی این ماهیت شناسی بود خیلی اصل روشه اینجا به این توصییات اجمالی صفحه قبل و اینجا گفتم یه قسمت از این ماهیت شناسی رو شما اینجا میفهمید وقتی که ارکان و روش استنباط من بگم شما میفهمید مراد من چیه؟ آیا تو اصوله؟ آیا تو اصول آمدن بگن اول چه کار کن دوم چه کار کن؟ نگفتن پس مراحل و گام ها رو الان اصلا تو اصول نمیگن مگر جزی چرا؟ شاید سطر آمده چه کار کرده؟ اصولش رو بر اساس سیر کلی استنبات دو بود قسمت ولی خود این را خیلی جزئیت میخوا ببینید خب شناسی راستی من یه قسمت دیگه بگم سریع و ببینید شما مثالی مثاله که گفتم قدران شما من سه دسته روش میکنم مثلا یکی از این ممکنه هم فنون حسابش کنیم ببینید شما احکام تکلیفی دارید احکام وضعی دارید یه سری از این اصول و ضوابط و اصول اصالی که بین همه احکام تکلیفی و وضعی. یه سرش اختصاصیه. خب اینجا مثلا از این فنون اینجا ما چه کار می‌کنیم؟ قدم اول ما به چی تمسک کنیم؟ قدم دوم به چی؟ یکی هفت در واقع حالا فنون جزئی اینجا نمی‌خوام از این موارد کلی. یکی از کارها چیه؟ تمسک به نصوصه در, در احکام تکلیفی و احکام وضعی شما الان میخوایی اثبات وجود بکنید اول به دنبال نسب بگذید نسب چی میگیم؟ بگیم آقا اوجب تو علای که هازا کتبله الله که هازا هازا واجبون چه سیقه مزاره چه سیقه مازی؟ احسان تو جمله خبری پس ببینید الان از این مهبر از لوش های عام لوش های در واقع این قصفات رو تا پوچیش از این مراحله اینا هر کدوم کلی مرحله داره ها من برای مرکارهای فهرستی کلی مرحله جدا دارم برای رجال مراحل جدا برای صندت شناسی مراحله هر کدوم از اینا حالا لوش های استنباه عکس بندازن کامل بشه که این تیکر بگم دیگه الان خسته نمیشید کلاس فهم مثلا نمیشه آمد ببینید اینجا این سه دسته من میکنن تمسک به نصوص بر پسریحات نصوص منزوم تفسیر تمسک به ظواهر همین میشه چی اپشنال استثنایی تمسک به لوازم دو قسمت، لراغل بین، غیر بین این غیر که بیننه میشه اینجوری تکنیبه استثار میشه خوب. این رو چرا اونجا نمیشید؟ شما جلوه بروشناسی استثاری؟ خب، یه خب، یه خب، یه هم جا نیست، بکنم. میخواد تحکیب ببینید علاقی، شما این رو کلی شاخه میشه بکنید چند تا حکومه تکلیفی دارید؟ هم، شاش احکامه، تکلیفیه خمسه و اخوان وضعی تو هر کدام نتیجه شیه باید به لیست بکنید نوس در واقع مواد مناسب نسو نفس میگید حاضر واجبان میگید حرامان سیغه های تعبیری حرمت چی خود کلمه حرام دیگه چی؟ نه, نه یک رواب عامه مگر اینکه معنی خواست بگیریم اون با کراحت بیشتر میخوره دیگه چی؟ ممنوع اون پس مادی من مادی چی بود فرمونده؟ منهی اون مادده نهی خب پس عذیت روشی آدم بیا دهت تا میثالیم برای هر قدرات حکم وجود، حکم حرمت، حکم استحباب پس مصوص مواد مناسب با یه تصریح بکراحت و لیستوگا یک دو سه چهار پنج. این از خود آید رو باید دارد. آره دیگه آه. و تو کتاب های فقری هم پوید پا... الان ماشاءالله خب وضعی هم همینطور مثلا وقتی میخواید بگید هازا شرطون بخواید اثبات شرطیت بکنید از کجا باید اثبات شرطیت بکنید اولی و بهترین که این که بگید به من هازار مشروط به فضا. پس آیا کسی دیگه تو درس فکر اینجور بحث کنه؟ یه جایی نزدیک میشن، یه جایی دور میشن. پس اون که من گفتم زابت مند نیست، جامع نیست، توجه نداره، استفاده میکنه. ولی وقتی آدم منده، پس این درس روشناسی ناصی مستقل از درس اصول باشه. چرا؟ چون خود راهش رو بکنه. یک سال، ترتمیز، دو سال، سه سال اینجور آدم داشته. مهندسیش توان اینجور چیکارم میکنه؟ من بعضی بحثشان دیدم، جزواتشون، یکی بعضی نواراشان دیدم گوش کردم اینا هم یه قسمتاشو برجسته میکنه مثلا اون اصول عملی هایی که دستبندی داره بعد خود اونو میگه آقا خود اونو من اونو من تو مراحل اینا آوردم حاج آقایی البته الان درس جدیدم شروع کردن یه جلسش که فایل پسرم داد یه زن کرده و گوش کردم اینا هم هدفشون اینه منطقه یه جاهای زوغ ممکن زوغ شما زوغشان زوغو آقا فرق کنه یه جایی نزدیک میشه ولی جامعیت مهمه من تو این یه جایی هم برجسته میشه یه جایی ممکنه کمتر پرداخته میشه ممکنه ادامه شده خروجی پس اسمش دانش ممکنه نداریم مگر اون روش شناسی بشه دانش ولی حداقل قلب اونان درس یه سال روزانه بعدم بگن همه اینا رو. بگن این چیه فنون و زبابتش چیه اصالیبش چیه مثلا بحث ق... خب چند استاد من معرفی کنم و این صاحب کتاب یا آقای ای... حالا ایدانی کجا به نیستیم ای... مح... شیخ محمود ایدانی بیشون ای چند چند کتاب داره شرح مکاسبش هست نوشته <تصفيق> <تصفيق> اینا دارن. ایشان تو قوم بوده، آل بوده پایانیمی ست ست چارش روش ناسی شیخ انصاری بوده. قبل از پزشک، پزشکی میخوادی بعد اومده تعلمیش. الان تو بسرا سراینی. تو دست خارج تو بسرا داره کتاب یه پا... چند جلد مکاسب، شر مکاسبش بر روشی. یه موقع فرصت شد روش ایشان تو فشورده است. یه سیری داره، یه جزئیاتی هم داره تو کتاب زیادی داره. این یه مورده. شیخ محمدمهدیان. یه آقایی داریم آقای شیخ امم یه سید علی فضل‌الله داریم، یه شاگردی داره که قبلا من کتابش رو پیدا کردم، بعد دیدم بعضی کانال‌های کانال روشنایی‌ها اینا دیدم اون‌ها هم پیدا کردم. نه نعم آقای عبدالكریم الکس درهنامه خاصه چون اون بزرگوار هست آقای سند یه کتاب جدید ازش پیدا کردم مناهج و اینا دیدم اتفاقاً امروز دیم توی کانالی هم اینگار اسمش دیدم اشاره کرده بودم من متنش دارم تو سایتشون شننا کردم اجمالاً آقای علی آقای علی دوست داره ولی قرار کار بکنه ولی مدلش متفاوته ما یه جلسه یه کمیته طراحی فقه حکومت که با هم بودیم من رو... سرفصل روش استماد بودم همینه رو بودم. قبلن لا بلای نوشتهاش احساس می کردم که آقا ایشان روی کردش یه جایش متفاوته اصلا روی کرد مرحله ای نداره <تصفيق> تو اون جلسه دیگه بحث شد بالمونم کوتاه آمده دارد دیدم نه ایشان یه جوری میره مبانی کلان یه جور فلسفه فقهی مدده نظرشه خیلی با مراهل کنه اونم دخیل هست داره. نه که دخیل نیست به مبانی استنباتی جوری میگه روش خب پس عام. این قسمت رو بحث ما بکنی یعنی الان هفته دو هفته پیش من مدرسه مشکات همین الان یه جلسه مفصل با حالت سوال جواب که خود دوستان ارتقا بس بحث تو تمرصوف به زواهد یه جای چیزی همه همین او... چیز نه، نگاه این مدل الان هر به این مدلش منم ممکنه تک تکاشو کسی دیگه جای داشته باشه مثلا تقریبا تقریبا میگم همون خصوص اول بعد رو نه بکارگیری کار نداریم بیکاری اینو دارن این که من دارم میگم عرض می‌کنم میگم علما دارن بکار میگیرن می‌گیرن اون که گفتم آها این بغل دستم با این نظم بچینیم یه جای جا شاهجای جا حیدری فصلی که رو به ارتقاام هست تجربه میکنه بازخورد میکنه ارتقام میده آقای اون موضوع یادم ذهنم خسته شد آقای شیخ عبدالکریم بعد عرض می‌کنم زمینه شد و چند نفر دیگه هستن آقای واسطی کهشان واسطی مشهد یه سگانه ای دارم با این نامی صفحه بوده با آقای رشاد که بعضی فایل پی دی اف شون هم هست سگانه ای دارم یکی واسه مسئله شناسیه بیشتر از اون مسئله سازیه آمدن گفتن علل اربره رو بیاریم ذرب کنیم قید و قیودو و کار قشنگی هم هست فیل جمله ولی یه شلوغ میشه البته کار ما هم خیلی شلوغه اون مودلش این که بیشتر یه قسمتش بحث مسئله سازیه میگه او مسئله جد سازید چه چیزایی دارم زرد کنید علل عربه ها و اینا بحثش کنید یه قسمت قریب نیابیه به کجا بیشتر میخواد به این بحث استثاری یا به تحبیل نیگه اصالی مثلا استیاد قرائم یا به فنون و زبابد یه قسمت ثومی هم دارن الان من فرموش کردم کتابشان هم پیجوشگاه رشاد قرار چاپ بشه مزید. پی دی افتشان تا خودشان احتمال نشت دادن و هست من هم دارم برزای نسکالا بعدا چه تغییری میدن نمودار میکشن خب، یه تعبیری همشون به کار میبره الگوریتم الگوریتم آیا با این تناسب داره؟ بله کجا تناسب داره؟ اونجایی که من رز مراحل داریم مراحل فلایشان مهندسی اشتهاد به چی میخوره؟ چونکه مراح... بم... مراحل و دستبندی است مفهوم مهندسی میخوره دیگه مهم... مهندسی اشتحاد مهندسی استنباد مفهوم الگوریت مناسبه چیه تو م... تاویر ریاضی از خوارزمی گرفته شده قرب رفته شده اینا هم تو مفاهیم مهندسی و ریاضی اینا به کار میبرن الگوریت جایی که آدم یه جایی میره به دو سل مسیر میخوره اینجا اینج الگوریت یعنی میگیم اگر فلان بود برو این مسیر اگر فلان بود برو مسیر دوم همین همینجور شاخه شاخه ها این مفهوم پس الگوریتم با این تناسب دور ما به کار میبریم حالا فرم چرا؟ این فرمودن که نوشته اینو من چه راه شخصا هم موضوع شد اینا کلياتش هم نوشته شو من دایما معمولا در این حلقه مشق اشتیاق حلقه مشق گروه فقه و حکومت هم که من استاد ماین ناجی نشده هستن اینا رو تناس به تناسب هر بس البته بیشتر دیگه دیالوگی این حالت درست نیستش که یه تنفیقی بعضی من درس دادم اما خیلی اینو کار میخوا مهم من خواستم ذهن شما رو مشغول کنم هدفم چی بود که این مقدار فکر من به هدفم هم رسید میخواهم عرض کنم که این نگاه مراهل مهوری گام مهوری این خیلی مهمه و بعد فروم زوابه و اصالی که البته اینا حالا تعریف شیعه یه کار بشه یعنی خودمون رو همه چند ساله وضعی تو تا من کار میکردم سبگه هم تحریف بکنم یا ارتفاعش بکنم شما میتونید به زمان مثلا میقایید کلیاتش رو شاده در رو نگید خودتون چاپ بشه کلیاتش، بعد جرگهای بعدی همتونی مثلا فقط بروشه ناسید اجمال و تفسیح خ خب، البته من چون که کار جتی کار پیژوهشی اگاه به راحتی این حواسم به این بوده وی دوستانم همه تشوی کردم وا کار اینجوری اما میخوامم یه ذوق خاصی دارم معمولا چند سال هر کد کار از کارا معومن طول میکشه اما اصل نکته میخواستم این سگانه رو ا این قسمت. حالا اینا خیلی وا مراحل اصلا ذهن شما اگر واشو شما 20 سالم که میرم درس خارج این استاد مراحل رو یه جوری میگه یه جوری نمیگه یه جوری هم متناقض دیروز یه جور مراحل به کار بود امروز یه جور هاجا ما موضوع شناسی میشه اینجوری بگین دیگه اگر کتاب اضافه تا مطرح موضوعه شرعیه اونجوری اتفاقای واقعیت چه میگه لا حکم شرعیه اونجا منظور بذاریم چون مقدمه دیگه موضوعات باشه تا حالا از این دوستان طلبای جوان این آقای یه بحث کلی مرز کنم روش شناسی دوستان فقط الان تشویق میاره حضر روش جایگاهش کجاست یه مفهوم عامی من به کار برنشد اون درس اصول خدمتشون یه مضمون به سایر مقدمات اشاره کردم یه مکتب اصولی مکتب فقهی میگی مکتب ابتدایی این دوتا رو باید تلفیق کنیم تو مکتب شناسی من چند تا مبانی لیست می کنم برای مکتب مثلا فقهی بگیم مبانی کلامی مؤثر مبانی زبان شناسی مؤثر مبانی احیانا جامعه شناسی مؤثر مبانی رجالی مبانی اصولی و هر مبانی دیگه که موثره پس یه قسمت از مکتب میگیم لیست مبانی حلقه آخر میشه روش یعنی جایگاه روش رو من جز مکتب میدنم خود مکتب رو کجا باید بحث کنیم اصلاسن تو فلسفه فقر اگه مکتب اصولی میخوایم بگیم تو فلسفه اصول اون نیم سال که من خدمت شما داشتم با اون مدلی که کمی هم شاید عذیت شدی مخصوصا حضوری هم نبود من خیلی دنبال این بودم تفاوت یه منطقی غیر از اون مراحل تاریخ چون تاریخ اصول بود ویژگی کلی و جزئیشه به شما معرفی کنم یه قسمت رو مثلا تو متنی که دادم ارائه دادم و بردم قسمت آخری رو هم حذف کردم که اذیت نشید یه روشی برای مکتب شناسی اصولی میخواستم ارائه بدم که سعی کردم چند سالی دارم فکر میکنم یه ابتکاری توش بیه که فرق این اصولیات کم بهتر فهمیده بشه اون یه موده اما یه موقع میگیم روش کار اصولی چیه باید چگونه چی باشه اون مشابه وقتی میگیم مکتب فلسفه فقر رو میخوایم بگیم ف... تو فلسفه فقر یه قسمتش مکهاتبه بعد تو مکتب مبانی یک دو سه چار انواع مبانی و بعد روش روش میشه جوز اخیرون چرا جزء فلسفه چون میخواد شما رو آماده بکنه برای ورود به دانشی فلسه های علوم زمین ساز اونن بحث روشیشون تو اون بحث میشه. لذا من که گفتم درسه درس ممکنه خودش جزه شاخی دانشی باشه. لازم نیست اگه شما این درس میخواد بگذارید کل اون دانش رو بگذرانید چیه بررش بزنید؟ این اون تطبیقات اصول بود اون تطبیقات تطیقات اصول شما میخواید کل اصول نمیخوانید. یه برشه که کاربرده این هم از این جهتی برش کاربردیه. جایگاه دانشیش جزء مکتب, مکتب شناسی، مکتب شناسی جزء فلسفه فقه اما خودشو به کار داریم. و این قسمتیه حالت تولیدیه و بزرگان حوزه که میخواد قائلم نیستن یه بزرگی از یسمی که خیلی با من ارتباط داشت منم ندیده بودیش کلی ترهی من میخواست روش کار کنه روش ارائه دادم یه بارم اومد بعد که من خود شب رانندگی کرده بود اومد اون موقع نشه تو ماشین حتماش در حال خواب بود کلی زحمت کش بردش طرح داد اون کمیته معلوم کدوم بزرگونه گفت اینا میشه همون لیست کفایه رو بیار اون و اون احتمال اول دو هم که شما فرمودید آیا قائل داره یا نداره به ثبته خیلی رسمی نه ولی غیر رسمی قائل بعضی جلسات ما بحث داشتیم و اون احتمالات قائل داره ممکنه خیلی جدی نباشه شخصیتش جناب فیل جمله من به نظرم اگر شما میخواهید موفق بشید تو روش ثبات بعد شما اون رشته چیه تربیت مدرس فقه هدف این رشته تربیت مدرس سطح چیه؟ و اینا. نه. شرح لومه و اصول فقه بعد فرض بگیم این سطح چهار داشتیم اه. مثلا مناسب بود برای چیه؟ تربیت مدرس اینجا خب شما تو این قسمت خوبه چه کار کنید حالا اگر یه موقع مثلا فرصت های اینجوری یا فرصت رسمی چیز داشتید یه مروره البته اینا اجمال تفصیل خیلی بیاده یه مروری ما به روش ها می کردیم. شما می‌رفتید خودتون از الان می‌خواید تدریس بکنید الان به شهر علم ار دارید این مراحل رو سعی کنی کنید مثال براش پیدا کنید مراحل رو من ممکن با یه بیان بگم شما برای خودتون با ذوق خودتون ابتکار بخرش خرج بدید واسه کل تجربه اوذوی دارید دیگه اصلا نگاه خودتون می‌نیس اصلا مبادله من یا چیز دیگه ممکن دره اصلا اینو ممکن قبول نداشو اب نداره مهم اینه که تو دفتری که میزید یه دفتر سفید صف... یه برگه سفید خالی می‌ذارید ایده خودتون رو بنویسید و اللا به پرورش نیست بعد مهمینه که که ازشان لعه یا کتاب آقای ایروانی شروع کنید مکاسب که الان خیلی دور نش شروع کنید بیا کار کنید روش استمادی که شیخ داره به کار می که اون یه داره چون یه رفت و برگشتی داره یه سیستم خاصی خود شدهه مخصوصا یه مبنای بگیم کلان داره تجمیه قرارائمی این دوتا رو من با هم بهکار من تجميع قرائن میکنم بعد تراکم ظنون برای من حاصل میشه ببین مثلا اگه من دردی گه به کار میبره آقای علی دوستیشو به کار میبره من این رو با هم به کار میبرم ممکن جدا جدا هم بگم ولی میگم من تجميع قرائن میکنم بعد تراکم برای من حاصل میشه بلکه اطمینان یه جای حاصل میشه خب چون که مبناش اینه تو این سمت اپشن سازی استدلالی استفاده خیلی به خودش انبارسونش من یه کار دیگه هم می‌کارم استدلال استدلال رو چی الان هستی به این ظواهر و نصوص حالا اینه با تساوی شامل نصوص هم بگیریم خود متن میگه این روایه دلالتش چیه استدلال استدلال باللوازم انواع لوازم داریم لوازم وجودی لوازم بالا میشه به با با این مربوطه ولی اون میشه بحث چی میشه اصولش ما اگه قبولش کردیم اینجا به کارش میبریم قبول نکردیم به کار نمیبریم اینجا لوازم انواع لوازم مثلا یکی از موارد شما خواهید یکی از روش های آجی داره خوابش میبردیم آره. خدمت شما مثلا یکیان لوازم بگم رفع زمد کنم این مثلا اینکه لوازم چیه شما خواهی حرمت رو ثابت کنید نستش اینکه که بگه حاضر حرامون درسته ظهورش چیه؟ میگه اترک سیخه امر دیگه دلالت ظهوره یا امر امر ظهوره لوازم چیه؟ میگه آقا ببین اینجا گفته اگه مرتکب بشی شما رو من میبرم جهنم اصلا نگفته حرامه اصلا نهی نکرده ولی گفته برو انجام بده ولی من میبرم جهنم از این به چی ترسه کرد؟ به لوازم در واقع اقاب لازمه. خب توی شرط میخوایم اثبات شرطیت بکنیم میخواییم بطلان رو میخوایم اثبات بکنیم لب... اه... نگفته باطله گفته عید سلات دوباره وجوبه... ما از عید چی میفهمیم؟ وجوب عیاده میفهمیم چه رفتی به چیز داره به بتلان داره یعنی بوت... اسم بطلان نهارده میگیم ها این لازم است بیا الان اینا شو به کار میبرید ولی خداگاهانه نیست وقتی خدا کنه نباشه یه جوری اصلا بیکار نمیبریم چون تو لیست راه شما نیوردیم من یه کاری کردمم این میگم خداسی کاری بحث متون 600 تا یه کار روشناسی من به اجبار بعضی چیزاش انجام دادم ولی بگم بحث ترتیبی هم کار میکنم بعدم نمیاد به ترتیب مسئله بگم آقا تو این مسئله این, این, منظمه. این که منظمه یکی که بگیم آقا 600 توی مسئله یک پنج استدلال برای این ور بر اون ور بر آورده بگیم این استدلل یک چه روشیه اون یکی دومی چه روشیه اگه میخواد اطلاق بگیری بکنه روشهای جزئی که به اون اسالیم و فنون برمیگرده فنون استنبات اطلاق چیه فنون زمین زدن اطلاق چیه این آقا ادعا میکنه این مطلقه این بزرگوارم ادعا میکنه که مطلق نیست شما از کجا بفهمید مطلق مطلق نیست هر دو تا اداز. یه فنونی داره اینجا میگیم مثلا آقا 600 از این پشتا فنون استفاده کرده میگی آقا اگه میخوایی بفنیم مطلق نیست به این قرار این توجه کن اینا رو اسم میذاریم یا یه جا تو استطلال ها مثلا تمسط به تالیفاست های اثباتی تمسط به تالیفاست های ثبوتی اینان پراکند پراکنده بعضش را استفاده میکنن بعضش را نمی کنن. آقا